بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ارائیتالذی نتذبو بالدین آیا کسی که روز جزا را پیوسته این کار می کند مشاهده کردی؟ بزالیتالذی یدعو الیتیم او همان کسی که یتیم را با خشونت می راند ولا يَحُبُّ على طعام المسكين بعد دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی کند فَغَيُّ لِلْمُسَلِّينَ فَسْوَای بر الَّذِينَ هُمْ که خود را به دست فراموشی می سپارند الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ انها کریا می کنند وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بحثی کرم دار از من امینم اوچاند